ولی یه عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا، وانگهانی آن امیران را بخواند یک به یک تنها به هر یک حرف را، گفت هر یک را به دین ایسری نایب حق و خلیفه من توی، وان امیران دیگر اتباع تو کرد ایسا جمله را اشیاء تو، هر اميري کو گردن بگیر یا بکش یا خود همی دارش اسیر لی تا من زندم این وا مگو تا نمیرم این ریاست را مجو تا نمیرم من تو این پیدا مکن دعوی شاهی و استیلا مکن اینک این, این توما و احکام مسیح یک به یک بنخوان تو بر امت فسی، هر امیری را چنین گفت او جدا نیست نایب جستو در دین خدا هر یکی را کرد او یک یک عزیز هر آن را گفت این را گفت نیز هر یکی را او یکی تومار داد هر یکی ضد دیگر بود المراد جملگی تومارها بود مختلف چون حروفان جمله از یا تا الف حکم این تومار ضد حکم آن پیش از این کردیم این ضد را بیان